خواست خانه بسازد. چون از بچگی تعمه اجاره نشینی را چشیده بود، هر طوری شده میخواست خانه از خودش داشته باشد بزرگترین و امیخترین خاطرات دوران کودکیش، خاطری احساس از این خانه اجاره‌ای به آن خانه اجاریی بود در هر احساس کشی غیر ممکن بود پدر و مادرش با هم دعوا و مرافع نکنند، از دست هم دلخور نشوند وسایل شکستنی، کاسه ها و بشخاب ها را لای پارچه های کهانه و توی کارتون میگذاشتند مادرش همه خورده ریز ها را از کفگیر و انبار و لوله منقل گرفته تا تو توری کباب را که لای روزنامه پیچیده بود توی جبه ها بعد گاری دو اسبهی می‌گرفتند و وسایل را بار آن می‌کردند. مادرش سعی می کرد روی گاری جایی برای گلدانهای شامدانی و میخک و حسن یوسف پیدا گاریهای کشی دوران کودکیش را که در یک طرفش کاسه و کوزه دیده می‌شد و طرف دیگرش بسته‌های تنوپید شده هیچگاه فراموش نمی‌کرد. وقتی اساسیه به خانه جدید می‌رسید، میدیدن چند بشقاب و لامپ‌ها و لیوان شکسته و در شیشه‌های روغن زیتون و سرکه و شربت باز شده و همه لباس‌ها و لحاف و تشک روغنی و نوچ شده. پدرش فریاد می‌زد: نداری یعنی بدبختی، آدم ندار از آسمون هم واساش می‌بارد. همین ها باعث می شود پدر و مادرش دوباره با هم دعوا بکنند جابجا جا شدن در خانه جدید هم برای خودش دردسری بود وقتی هم جابجا جا می شدند و میخواستن کمی آسوده زندگی کنند یا اجاره خانه را نمی توانستم بدهند و صاحب خانه شکایت میکرد و اساسشان را توی کوچه می یا اینکه صاحبخانه بهانه ای می آورد مثلا می گفت، پسرم رو میخوام زن بدم یا می خوام خونه رو تعمیر کنم و آنها را از خانه بیرون می کرد. تقریباً در همه محله‌های استانبول مستجری کرده بودند. اوایل بچگیش در قاسم پاشا گذشته بود. بعد به اسگودار رفته بودند. اول دبستان را در سلیمانیه گذرانده بود. کلاس سوم را در سه مدرسه مختلف در آکسارای، جراح پاشا و لاللی خوانده بود. در استانبول به هر جا به هر محله‌ای که می‌رفت، حتماً از یکی از خانه های آنجا خاطره ای داشت. این حرف پدرش را ویزه گوشش کرد. در دنیا مکان، در آخرت ایمان سال 1930 که دیپلمش را گرفت و وارد زندگی شد، دیگر نه مادر داشت، نه پدر چون درد مستعجری کشیده بود با خودش عهد کرد تا صاحبخانه نشده ازدواج نکند پنج سال با یک دست لباس سر کرد نه سیگاری شد، نه سینما رفت، نه گشت و گذار پنج سال مثل مرتازهای هند زندگی کرد بعد از پنج سال با نخوری و وصرفهجویی توانست دو هزار لیره جمع کند دو هزار لیره برای آدمهایی مثل او پول زیادی به حساب می آمد. با پولش می توانست خانه بخرد اما خانه دلخواهش را نه خانه هایی که می توانست آن پول بخرد در بداغم بودند با خودش گفت: یه قطعه زمین میخرم و خودم خونه دلخواهمو میسازم. میخواست خانهاش کنار دریا و نزدیک خیابان باشد با باغچه بزرگ و زیبا در جایی که میخواست با همان شرایطی که آرزویش را داشت دو قطعه زمین پیدا کرد. برای یکی از زمینها سه هزار لیره و برای زمین دیگر سه و لیره میخواستند با هزار لیره هم میشد زمینی حتی بزرگتر هم خرید اما این زمینها طوری که دلش میخواست نبودند بایست مدتی دیگر هم پولهایش را پس انداز می میکرد سال 939۴ هزار لیره ای را که جمع کرده بود توی جیبش گذاشت. مطمئن از اینکه زمین دلخواهش را پیدا می کند شروع کرد بگشتند. سراغ زمینی رفت که ۳500 لیره بابتش میخواستند. نیمی از این زمین را فروخته بودند و در آن ویلا ساخته بودند. برای نیم دیگرش پنج هزار لیره میخواستند. رفت زمینی را بخرد که قبلا سه هزار لیره قیمتش بود. برای این زمین 6000 هزار لیره میخواستند. زمینی که نمی پسندیده نمیپسندیدهش و بابتش هزار لیره میخواستند الان شده بود چهار هزار و 4500 لیره پولش را گذاشت بانک صرف جود هر از قبل شد هر جفت کفشش را دست کم 5 بار تخت میانداخت یک دست لباس داشت که همه جایش پر از وسله و پینه بود میخواست زمین بخرد خانه بسازد وسیله بخرد زن بگیرد بچه دار شود سر و سامان بگیرد سال 1943 فقط توانسته بود پنج هزار لیره جمع کنند. هر قدر هم صرفهجویی کرده بود. گرانی نگذاشته بود پول بیشتری پس انداز کند. در زمینی که چهار هزار لیره میفروختندش، چهار باب خانه ساخته بودند. یک قسمت خالی هم مانده بود که بابتش شش هزار لیره میخواستند. دیگر از خیر خرید زمین در داخل شهر گذشته بود. راضی بود بیرون از شهر زمین بخرد، اما زهی خیال خان. دیگر صرفه نبود، رسما خسیص شده بود. نمیخورد، نمیگشت، نمیپوشید. فقط پول جمع می کرد. ترفیع گرفته بود، حقوقش هم بالا رفته بود. پول بیشتری دستش را می گرفت، اما تا سال 1950 فقط هفت هزار لیره جمع کند. زمین هزار لیره؟ می خندیدند. بیرون بیرون شهر هم با این پول برای ساختن خانه که هیچ، برای ساختن کلبه کوچک هم نمی شد زمین خرید. زمینی که قدیمها دیده بودش و دو هزار لیره قیمتش بود، الان یک بیستومان زمین خالی مانده بود و گذاشته بودندش برای فروش. برای این تک زمین چهل هزار لیره میخواستند. برای خرید زمین چاره نداشت از اینکه پول بیشتری جمع کند. سرعت پسندازش را بیشتر کرد. پلان خانه اش را هم کشیده بود. میخواست دو جور توالت داشته باشند. هم سنتی هم فرنگی. یک اتاق خواب، یک اتاق مهمان، یک اتاق غذاخوری، یک اتاق پذیرایی، یک اتاق هم برای بچه هایش. پنج اتاق لازم داشت قبلا میخواست خانهاش دو طبقه باشد اما دیگر نقشش را عوض کرده بود پیر شده بود و نمی‌توانست مدام از پله بالا و پایین برود. سال 1954 1950 ده هزار لیر پول جمع کرده بود همه جای استانبول را گشت با این پول فقط در جاهای پرت می توانست زمین بخرد. بایست کمی بیشتر دندان روی جگر میگذاشت و پولهایش را جمع می کرد آه اگر می توانست زمینی بخرد و خانه‌ای در آن بسازد. از خیر پنج اتاق گذشت. نقشه دو تا توالت را کنار گذاشت. فقط یک اتاق میخواست که بی سرپناه نماند. همین که خانه را می ساخت، اولین کارش این بود که ازدواج کند. سال 1956 بازنشسته شد. دیگر با حقوق بازنشستگی هر قدر هم سرفجویی می کرد، نمی توانست پولی جمع کند. نتیجه بیست و سال کار و پولی که قروش قروش جمع کرده بود، دوازده لیره بود. با این پول نه داخل شهر می زمین خرید، نه بیرون شهر، نه کنار دریا، نه بالای کو، هیچ کجا. انگار دنبال زمین گشتن 20 سال پیرترش کرده بود. صدای پدرش در گوشش می پیچی. در دنیا مکان، در آخرت ایمان. در این دنیا مکان گیرش نیامده باید به وضعیت آن دنیایش میرسید شبی که خسته و کوفته از دنبال زمین گشتن به خانه برمیگشت، سر راهش به قبرستانی برخورد. چه جای زیبایی بود. باغچه‌ای زیبا، درست مثل باغچه خانه‌ی رؤیاهایش. پر از گل و بوته و دار و درخت. همین که لابلای گلها و شکوفه‌های رنگارنگ چشمش به سنگهای قبر مرمری افتاد با خودش گفت آدم دلش میخواد هرچه زودتر بره تو این قبرهای خوشگل. مگر سرنوشتش این نبود که دیر یا زود بمیرند پس بایزی قبر برای خودش میخرید که تا وقتی زنده است به دهت دوروبرش را درست کنند قبرستان بر تپهی مشرف دریا قرار داشت با خودش گفت خواب ابدی در سایه خونه که سرو بهتر از زندگی کردن است فردای آن روز اول وقت به اداره مدیریت قبرستان ها رفت میخواست برای خودش قبر بخرد گفتند توی قبرستونی که مد نظر شماست قبر خالی نداریم اما اگه بخواین توی قبرستون دیگه میتونین با 20 هزار لیره یه قبر خوشمنظره بخریم با خجالت گفت قبر ارزون تر که به وسع من برسه نداری قبر همه رقمت داریم قبر 15 هزار لیره ای 12 هزار لیره ای هم داریم فکر فرو رفت سر قضیه خرید زمین تجربه پیدا کرده بود میدانست اگر این دستان دست کند قیمت قبر هم بالا میرود و با این پول قبر هم نمیتواند پیدا کند همان روز معامله را رو انجام داد و قبرش را ندیده خرید بعدش رفت و دید جایی بود بد منظره بین سنگ قبرهای شکست و ریخته اما خوشحال شد چشم اینجا مال من مال من از آن به بعد کارش این شده که مثل آن وقتها که سر کار میرفت هر روز صبح زود سر قبرش خوشحال از اینکه سرانجام صاحب قطعه زمینی شده آنجا بنشیند پلفهای هرز را بجین کند گلهایی را که با خودش آورده دورو بر قبر بکارد و منتظر روزی بماند که به مکانش می رسد.